دوستان عزیزان خانوم ها و آقایان حتما همه شما با کاربرد, ج... کاربرد جاروبرقی آشناین دیگه رو که دو میدونین دیگه اصلا اسمش روشه دیگه برای جارو کردن نظافت پاکیزگی و این حرف جارو جاروبرگی دیگه همه اکثران تو خونهشون داره اما دیروز یه خبری رو مخوندم اصلا نگاه هم نه تنها به جاروبرگی که به کل جهان عوض شد اصلا نمیدونم چجوری بگم براتون نمیدونم از کجور شروع کنم حالا میگم دیگه یه جوری ظاهرن یک آقایی بوده توی عربستان به جاروبرقی خونه شونم خیلی ببخشید خیلی مذرعت میخوام با اجازتون دیگه شب بخیر میگفته به جاروبرقی خونه و به خاطر همینم خب همسرش ازش شکایت کرده و به هزار ضربه شلاق محکم شده فکر کن آخه آدم چطوری میتونه به جاروبرقی گرایش داشته باشه بعد تازه رابطه هم باش برقرار کنه به شب بخیر بگه خیلی عجیبه ها فروشگاه های لوازم خونگی برای چنین آدمی احتمالاً حکم مثلا استریپ دارن دیگه فکر کن از بین این ردیف های جاروبرقی که رد می چه حالی میکرده طرف یعنی بیچاره زنش واقعا بیچاره فکر شوهرت برای شب بخیر گفتن جاروبرگی رو به تو ترجیب بده آقا صدا پخش نکن زشت بده اه. مردم حالی به حالی میشن یعنی اون آقاه خلاصه گاهی میدونین با چیزای عجیب غریبی آدم برخورد میکنه تو این اخبار واقعا به کجا داریم میریم ما واقعاً. حالا خانمای عزیز تو رو خدا دیگه شما حساس نشین رو جاروبرگی ها تو رو خدا آقا مریض بوده بیمار بوده مشکل داشته من چم میدونم آخه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 فروش افق ولاده انواع جاروبرقی در اولین فروشگاه تخصصی جاروبرقی آغاز شد. ما با تنوع رنگ و مدل در اولین حراج ویژه جاروبرقی به طور قطع پاسوخوی تمامی سلیقه ها و نیازهای خریداران محترم خود بوده و کیفیت محصولات خود را تضمین می نماییم.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 جاروی سخنگو با قابلیت برنامه ریزی برای پخش صداهای دلخواه شما در هنگام استفاده و جاروبرقی با باتری داخلی که در هنگام قطع برق کار شما را نیمه تمام نگذارد به همراه ده ها مدل دیگر برای نیازها و سلیقه‌های مختلف فروشگاه تخصصی جاروبرقی جاروکاران در خدمت مردم